سلام بر حسین، فرزندان حسین، اهل بیت او و یاران حسین چند تا آدم اوان اسم میبرم دوسته تایی که حالا میگم آدم های خوش سابقه هست او بدسابقه هاش کار ندارم یه شخص اسم نام حبیب ابن حماز که من دوست دارم او رو حمار بخونم این آقا شیعه بود و چقدر سوابق خدمت داره و جزء تابعین در کوفه است باعض از روایاتی که از حضرت امیر علی السلام و از جناب ابوذر صحابی بزرگ پیامبر نقل شده راویش این آغاز بعضی جملاتی که میگید قال علی بعضی از ایشون نقل کرده خودش رو از شیعیان امیرالمومنین میدونه یه وقتی که تو سپاه امیرالمومنین حضرت, حضرت امیر هنوز هستن و ایشون هم جزو ها و به اصطلاح شیعیان امیرالمومنین تو این جبهه هست حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان که بهش میگن که یه وقتی پرچم سپاهی در دست تو خواهد بود که اون سپاه سر حسین رو خواهد برید حالا یہ الان جز به خود علیه ایشون ناراحت میشه تعجب میکنه متاثر میشه میگه آقا من امیران مبانین دیگه ادامه نمیدم نمیگن آره تو ولیش میکنن چیزی نمیگن میرن این بعد از قضایایی که اتفاق افتاد بعد از شهادت اميرالمومنین سر قضیه امام حسن و مسائل معاویه و اینا جدا شد از خط اميرالمومنین اهل بیت و رفت جزو باند اموی ها شد بعد این قضیه عینن اتفاق میفته تو قضایای عاشورا و کربلا ایشون پرچم داره یه بخشی از سپای یزید میشه شبیه قضیه شخصی به نام خالد ابن عرفته عذری او اواخر روز و اسباب بوده در فتح مدائن حضور داره از فرماندهان نیروهای اسلامیس در جنگ با امپراتوری ایران یک بخشش دستینه چون که یه بخشش پدر مختار بود یک بخشش آدم های مختلف کسایی که تو اون سوابق عملیاتی دارن زمان پیغمبر و به خصوص زمان امیرالمومنین اینجا توی قضیه تو دو تا جبهه قرار میگیرن یعنی کسایی که همرازم بودن بعد با هم جنگیدن از اون طرف شما کسانی رو دارید که تا قبل از آشورات جزء جریان‌های اموی هستند یک نمونه شد زهیره این زهیر ابن قین که میشناشید که میاد و بعد میاد برمیگرده میگه به زنش اینا میگه طلاقتون میدم با طلاق دوستانه از اونجا میگن شده شده طلاق توافقی طلاق توافقی میده و میگه که شما جدا بشید و برید این مال و اموالم بردارید برید من دیگه از این بعد با اون کاروان میرم نه با این کاروان با خانومش چه خانوم شریف بزرگی میگه من تو رو اول تحریک کردم و مجبورت کردم بری پیش امام. تو که داشتید فرار می‌کرد این ملاقات کنی تو که اصلا با امام نمیخواستی ملاقات کنی تو هم که تا حالا که تو جبهه اینا نبودی تو جبهه مخالفین بودی من که تو رو تشویق کردم بری حالا تا جای جاش رسید منم خواهم بذاری کنار که اون اصلا هر جا همین صحبت‌های همین خانم زهیر میشه تویدترین آزار هنری که دو تا که تو دنیا کسی باور نکنه اینا همه میگن ساختگی اصلا هر گوشش رو که نگاه میکنه از قضیه هر شوخیه. فرمانده پلیس یزیده. تو شهر کوفه. اولین فرمانده عملیاتی سپاه دشمنه که راه رو بسته، آب رو بر اینها بسته و محاصله کرده. بعد که میاد میگه که از اسب اماموسه میگن بیاد بفرمای پایین میگه نه من پایین نمیام. من جلوی شما رو گرفتم اولین کشته پیش چشم شما باید من باشم بعد پسرش اول میفرسته جلو میگه پسرم برو جلوی چشم من و حسین میخوام کشته شدن تو ببینم بعد رو میفرسته مصعب شهید میشه بعد به امام حسین میگه من باید برم که چی تو شادت میاد میگه تو مادر تو رو حر و آزاده نامید تو در دنیا و آخرت آزاده ای تو جزء سپاه دشمن بودی تو همین دیروز ولی تو آزاده ای عطا هر قسمتشه که شما نگاه کنید حالا از این آدم ادامای اینجوری رو ببینید این آقا بعد از صلح امام حسن که صلح شده از تشکیلات امیرالمؤمنین و امام حسن ملحق میشه به دشمن میره جزوه ادامای معاویه میشه پرچم معاویه رو به دست میگیره که وقتی معاویه وارد مسجد کوفه میخواد بشه این آدم از بابل فیل وارد شده و پرچم معاویه رو میکوبه به زمین که حکومت او از طرف حکومت معمور میشه یک شورش خوارزمی رو سرکوب کنه بعد مسئول یک چهارم کوفه میشه از طرف زیاد علیه حجر وارد عمل میشه با اینکه سابقا اینا با هم بودن حزب بهمان خطر دستگاه معاویه و وقتی حجر دستگیر میشه این آقا از جمله کسایی که نامه گواهی علیه حجر امضا میکنه حالا همین ادم رو جناب شیخ مفید نقد کرده و بعضی از اینا میگن این آدم خود این آدم حالا برگردین چی میگن فلش بک برگرد به 20 سال قبل توی جنگ سفین و اینا خود این آدم یه وقت تو جبه جزء سربازان علیه داره با دشمن میجنگه. بر برمیگرده از خط مقدم میاد پیش از تعمیر میگه آقا خوشخبری میفرمان چیه میگه که خالد ابن فلان فلانی کشته شد امیرالمومنین فهمید نه خل اینجوری نیست این زنده می‌مونه یه روزی که من نخواهم بود فرمانده لشکر گمراهان خواهد شد آقا دیدنش کشته شده فهمودن نه کشته نشده هر دیده اشتباه کرد این این می بود در اون دوران بعد پرچم دار اون حمی آقا او حبیب که میاد میگه که بلند میشه میگه امیرالمومنین من جز شیعیان و عاشقاتم عاشقتم علی فدات بشم جزو و عاشقاتم سربازتم بگو کجا برم حضرت امین فرمودن که یک کلمه بهت میگم بترس ترس از روزی که پرچم اون آدمی رو که گفتی کشته شده تو پرچمش رو دوشت بگیری و بشی آدم او گو آقا چی میفرمایید چی می اون کشته شده من یعنی چی من دارم به شما میگم عاشقتم به من حرف نمیزنی حضرت من سکوت بعد می بعد میفرمان که آره چون این خواهی کرد بعد اشاره کردن تو همون مسجد کوفه بودن تو همین مسجده که بعدا 20 سال بعد اتفاقا می افتد امیرامونی اشاره میکنن به بابل باب فیل به یکی در از در مسجد کوفه میفرمان که از همین درم هم میای تو از همین در میایی تو و پرچم میکوبی تو همین مسجد این حالش خیلی گرفته میشه و ناراحت میشه و اینا میگه چرا از همین بین من این حفرزن حالا قضیه ای همون کسیه که روز کسانی که بعدها تو قضیه مختار میگفت که مختار کذابه و ادعای پیغمبری کرده یکیش هم همینه که من مختار رو میشنسم از قبل یا اصلا از اولم هم درقو بوده و فلان همین آدم دقیقا از بابل فیل. همون همون مسجد کوفه. در گنجی کربلا وارد میشه با پرچم همو آدمی که گفته بود کشته شده و هنوز زنده يه. پرچم از دست او میگیره میاد تو مسجد کوفه میکوبه پرچم معاویه رو و میگه حکومت عوض شد مورد دیگه زائد ابن قدامه ابن مسعود سقفی که اموی مختاره تو فیلم هم بود دیدینش یه بخشش آورده بود که این آدم آدم خوبیه تا وقتی که هزینه لازم نشه بپردازه مثل اغلب ماها خوبم تا یه وقتی از یه وقتی که باید دیگه بگذری از جان و مال و آبروی دیگه ما منظورم. خب یک زمانی وقتی مختار بازداشت شده دیدید که ایشون نقش شده در تاریخ رفت بی اجازه ابن زیاد رفت از حکومت مرکزی اما نامه آورد که مختار آزاد بشه بعدم به مختارم کمک کرد بعد که مختار سقوط کرد به حکومت بعدی کمک کرد به جریان ابن زبیر و همینطور و این آدم میمونه آدمی که نمیخواد کشته بشه در راه حق آخرش در راه باطل کشته میشه در سال 76 هجری از طرف حجاج سقفی جلاد بزرگ تاریخ یه صدامی بود از صدام بدتر بود حجاج بن یوسف سقفی اینو میفرسته برای سرکوب یه شورشی که خوارش کرده بودن علیه حکومت و این تو جنگ کشته میشه مختار رو دیگران بهش میگفتن خب در راه حق کشته بشو میگه نه الله باشه در راه باطل ولی کشته باید بشه یه نقل شده راجب فرزند خلیفه که امیر با امیر مومونین بیعت نکردیشون و بعضی از اصحاب گفتن اقا به زور مجروم هزم فرماده هیچ کس نمیخوام امر عبدالله گفت هیچ کس نمیخوام به زور بیعت کنه فقط شمشیر نکشین علیه قانون درگیر نشین اقدام نکنین باید شما رو نخواستیم بیعت زوره کی نیست که خب این بهت نمیکنه الله میعمنی تو القدیر میگه که کسانی که اسم چند نفر میبره میگه کسانی که تو مسجد کوفه روز بیعت مردم با علی حاضر بودن و بیعت نکردن با دست علی بیعت نکردن بعدن رفتن با پای حجاج بن یوسف سقفی بعدن رفتن با پای جلادها بیعت کردن چون یزید حکومت فرستاد برای سرکوب شورش ها در مکه و قتل عام مدینه ایشون از مکه رفت به استقبال اینا بعد گفتن که آمد گفت من گفتن چکایی داری کنم بیعت کنم. گفتن که حالا حالش نیست فعلا خلیفه مشغوله. با فواهش و رقاصها ها و مشروب و اینا مشغول بود. گفت نه من باید بیام اینا. گفتن خب حالا چه عجله یا آقا داری میاد مکه اونجا بعدن بیعت کن. بعد گفتش نه من شنیدن پیغمبر گفتن که هر کس که امام زمان خودشو نشناسه و به موقع بیعت نکنه به مرگ جاهلیت ممیره. من میگم نکنه خدا اینا نکرد تا ایشون هنوز تشریف نیاوردن وارد مکه شدن. یه وقت من سکته نکنم می کاری بشه ببینم به مرگ جاهلیت مرده باشم بعد جالبه این جلاد میگه که خیلی خوب بزنم بیت تو یکم دستش بندازین ازی مقدس ماوا و این است خب چطوری حالت خوب و فلان نو حالا این میات تو میبینه این چهار تا خانم تو بغل رقص و مشروب و فلانی حرفا رو میبینه و نیم لخت و نیم اوریان و اینا میگه که چه داری میگه اومدم به کنم میگه که دستم بنده پاش از زیر از زیر ملافه میاره میگه با پام بریت کن میبینی که دستم بنده ای هم دستش میذاره رو پایی که خدای بریت کردم قبول کن و دیگه گفتم بعضیا کمدی کومی... هم داریم ما توی قزایای چیز که نمیدونه آدم از یک طرف نگاه میکنه تراژدی از یک طرف نگاه میکنه کمدیه یک نمونه دیگهم اینجا عرض بکنم راجب کسیه به نام زهره ابن قیس ابن مالک جوفی از بزرگان کوفه این مورد دقیق کنید، اینقدر این آدم تغییر کرده که بعضی از بزرگان تاریخ میگن محال این یه نفر باشه. این حتما دو نفر هند. که این یک نفر باشه. و حتما دو نفرن هند این شبیه همه اشتباه شده تو تاریخ. این آدم جزو اصحاب پیغمبر هست. جزو اصحاب خاص امیر المؤمنین هست. حالا گوش کنین به حدی امیر المؤمنین بهش اعتماد داشته این جمله که میگم در کتاب الاحصابه جلد دو صفحه 52 نقل شده نقل شده از امیرالمومنین که فرمودن اگر کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه یک شهید زنده میخواد ببینه به این ابن قیس نگاه کنه این شهید زنده است. ای بود صد بار شهید میشد. خب این نقل شده از امیرالمومنین در مورد این یادن. البته تو منابع معتبر شیعه من ندیدم ولی هست این روایت. این کسی که امیرالمومنین مأمورش کردن بره بیعت بگیره از جریر ابن عبدالله در ری این کسیه که شعر در مدح امیرالمومنین المؤمنین شعرهای زیبای سروده که بهترین شخص بعد از پیامبر در اسلام و در میان بشریت علی است هنرمند و شاعره شعرهای قشنگی در مدح علی داره عمل رزمنده هم هست که حضرت امیر گفته این شهید زنده است در زمان علی اینجور بوده تو جنگ جمل و سفین جزوه رزمندگان خط مقدم امیر که با معاوی جنگیده. رجزهایی که میخونه تو همه رجزهاش نام پیامبر و علی رو میاره که من دارم در راه این دوتا دارم کشته میشم بی جنگم رو به نام وسیع پیامبر در شعراش و آثار هنریش نام برده در جنگ سفین یکی از جبه های عملیاتی معاویه رو ایشون شکست داد و در هم پاشید و اونا رو عقب زد امیر با چهار نیروی رو فرستادن به مدائن برای یک معمورتی و بعد گفتن همونجا مسئولیت رو به پذیر و اون خط دفاعی رو حفظ کن در برابر نیروهای های کممانده های که عملات ای های ایزایی انجام میدادن. بعد از شهادت امیرالمؤمنین امام حسن بهش معموریت میدن که همون جایی که هستی بمون و از بیعت بگیر که اونجا تحت کنترل حکومت باشه. بعد از شهادت امام حسن یه آدم اصلا یه مرتبه یه آدم دیگه ای شده وقتی که معی آمد قدرتی گرفته و بنی اومیه برکل جان اسلام حاکم شدن، یا مرتبه یک میت از دل این حی متولد شده نو خرجل میت من الهی و یو خرجل من المیت زنده از مرده میاد بیرون آدم های زنده از محیط مرده و آدم مرده ام از زنده میاد بیرون اینقدر متفاوت این آدم بعدا تو مرحله دوم زندگیش که گردنش کلفتر شده سیبیلش چپتر شده شکمش پی آورده و از جمله کسانی که علیه جناب حجر شهادت داده امضا کرده که این حکم اعدامش صادر بشه بعد میشه فرمانده پلیس کوفه در زمان معاویه و در زمان یزید بهش معمولیت میدن که تو باید کل خروجی های شهر رو بگیری که هیچ کس به حسین ملحق نشه ایشون ماموریتش رو خوب انجام میده یعنی تمام خروجی های کوفه رو جوری میبنده که کسی از کوفه به امام حسین در کربلا ملحق نشه در سپاه عمر سعد حضور پیدا میکنه یکی از فرزندان علیه السلام به نام ابوبکر رو در کربلا ایشون کشته. و یک روایت هم نقل شده که این در منابع اهل سنته در کتاب تبری نقل میشه که حسین ابن علی امام حسین به زهیر فرموده بودن که در کربلا که سر من رو این فلانی یکی از کسایی که سر من رو میبرن پیش یزید که ظاهرا میگه این میگن بله این بعد از کربلا که سرای شهدا رو میارن کوفه و سر امام حسین رو ابن زیاد این آدم رو مأمور میکنه میگه شما جزء اون تیمی باش که این سرا رو میبرید سریعتر برای یزید در حضور یزید علیه امام حسین صحبت میکنه یک سخنرانی کرده این پدرسوخته جلوی یزید علیه امام حسین که مفادش اینه که ای امیرالمؤمنین به یزید میگه شما رو بشارت میدم به پیروزی و به یاری خداوند خدا یاریمون کرد و پیروز شدیم حسین ابن علی و هجده نفر از اهل بیتش خانواده خودش و شست نفر از شیعانش به سمت ما می آمدند به سمت کوفه ما رفتیم و او رو دعوت کردیم که در برابر حکم امیر تسلیم بشه یا به جنگ او تسلیم نشد جنگ رو ترجیح داد بر تسلیم شدن و ما هم با طلوع خورشید از هر طرف حمله کردیم و شمشیرهای خود رو وسط اونا گذاشتیم و الانم جسدهای برهنه و لباس خونین و پارهشون اونجا افتاده و صورتهاشون به خاک آلوده است گرمای آتش خورشید داره اجسادشون رو تو بیابون کباب میکنه و باد بر اونها میوزد و جز اقاب و کرکس زائری ندارند این خندانی هیپوفیوزه با اون ثوابقش جلوی یزید کرکس و عقاب زائری نداره بعد که قیام مختار میشه ایشون با مختار درگیر میشه بعد که مسعب میاد باز در محاصله مختار شرکت میکنه و چه و بالاخره آخرش یه آدم رو تو مسئله خودشون مصرف میکنن مثل دستمال مصرف شده مینزنش دور یعنی اینقدر شخصیتی آدم متعارض و دوگانه است در دو مقطع از زندگیش که بعضی از بزرگان مورخین مثل ابن عدی گفتن محاله که اینا یه نفر باشن بعد او در آورده میگه به نظر من اینا دو نفرن تشابه اسمی دارن هم اسم خودشون هم اسم پدرشون هم شهرشون عین همه و اینا نمیتون یک نفر نیست و یه اشتباه شده و اینا دو نفرن که حالا معیداتی هم سای کرده برای قضیه بیاره کسای دیگه هم هستن که من دیگه از اینا عبور میکنم و بخش آخر اعراضم بیایم حالا این طرف جبهه بعضی از جملات اینا رو بگم و عرضم ختم میکنم بعضی رجزها و سخنان افرادی حالا من نارکسایی رو رو انتخاب کردم که بعضیشون اسمشون رو نشنیدین خیلی و تو روزه ها کمتر میگن یکی نصر بن ابی نیزره ایشون نوه نجاشی پادشاه حبشه شاهزاده است ایشان از وقتی که کوچیک بود با پیامبر ملاقاتی میشه و پیامبر بهش اظهار محبت میکنن و بعد که میره به عشق پیغمبر دوباره برمیگرده مدینه میگم اصلا دیگه نمیخوام من میخوام مدینه کنار پیغمبر باشه همونجا بزرگ میشه کنار پیامبر بعد کنار علیه کنار حسن کنار حسین و جالب نقد شده که وقتی که شاه نجاشیش پدرش از دنیا میره تنها پسرش چون اینه میان هیئتی از اونجا میان در مدینه که ایشون رو با سلام و صلوات به عنوان پادشاه و بخش مهمی از شمال آفریقا و شمال شرق آفریقا ببرن ایشون جواب میده که ما کنت الطلب الملک بعد ان الله علیه بالاسلام خدا به من مننت گذشته بعد از اسلام من هیچ پادشاهی رو نمیخوام پادشاهی مال خود پادشاهی من هم اینجا خ... کنار علی و پیغمبر و علی و فرزندانش باشن تو راه م... که از مدینه با امام حسین را میفته امام حسین را میفتن این سری خودشون میرسونه از عقب به امام حسین و کاروان که دارن میرن به سمت مکه امام حسین میبیننش بهش میفرمان که شما چرا داریم میایین شما برید جواب میده اگر رفتنی بودم نمیامدم بعد گفت ما اگر قرار بود بریم مینفتیم شاه میشدیم یعنی از شاهزاده تا برده آمدن کنار همینجا تو آشوه میگه من اگه قرار بود برم که نمی آمدن. من میرفتم خوب هبشون اونجا من الان که برم شاهن شاه هم همونجا همه دنیا در اختیار من اونجا ایشون چهل سال قاری قرآنه کنار علی و حسن و حسین و فاطمه است و تو جبهه اینقدر خوب جنگید که آخرش تا اسبشو پی کردن و رو زمین نیفتاد نتونستن بهش حمله کنن. مورد دیگه شخصی اسم به نام یزید ابن نوبیت یا صوبیت بسری اینشون ده تا پسر داره از بسره ملحق مخوان بشن به اینا تمام جاده ها بسته است از طرف حکومت که کسی از بسره به اینا ملحق نشه اینا با یک تیم، یک خانه تیمی داشتن با یک جمع هفشگه نفری میگن حالا بقیه نی آمدن رو ارتباط برقرار کنیم خودمون شبانه ما میریم از جاده های فری خودمون رو باید وقتی که امام حسین از مکه دیگه خارج میشن به سمت کربلا ایشون اونجا اینا خودشون به اونم ملحق میشن این ده تا پسر داره وقتی میخواد بره رو به پسرهاش میکنه که درم میرم و بر نمیگردم ما داریم میبینیم کنار پسر پیغمبر دو تا از پسرا از 10 تا پسر دو تاش بلند میشن میگن ما من اون 8 دیگه میگن نه ما نمی ما میخوایم زندگی کن. یکی عبدالله 25 ساله عبیدالله 22 ساله شش یا هشت برادر دیگه ان که اینا نمیاد پدر تو بچش میگه من میرم پسر میگه میام پسر دیگهشم همینطور به پسر کوچکش که جزش شهدا کابل که حالا میخوام بحث عمر بکنم موقع شهادت چی گفته ای آدم اینا کسایی که اسمشون نمیگن اصلا کسی تو روزا اینا دیگه نوبت به اینا نمیریسه این میگه که من پدرش میگه مطمئند تو میخوای بیای میگه بله میگه چرا میگه میخوام مستاق این آیه قرآن نباشم که فرمود ان الذين لا یرجون لقاءنا اونهایی که ملاقات با ما دیدار با خدا را لقاء الله را آرزو نمی کنن و نمی خوان و به حیات دنیا و چسبیدن به دنیا به زندگی دنیا راضی شدن قانع شدن همین و همی از حیات همی حیات مادی رو فقط می خوان و نو به ها و کاملا اطمینان خاطر پیدا کردن خاطرشون هم است که همینجا تای خطه و هم ان آیاتنا قافلون و کسانی که از نشانه های ما قافلن نه اینکه نمیدونن میدونن چشهاشون رو واقعیت میبندن اولاکم معواهمون نار اینا بدونن ته این خط جهنمه آتشه به ما کانو یک سبون. و این آتشم عذاب الهیم دستاورد خودشونه برایشون تحمیل نمیشه به ما و یک سبون. یعنی دستاورد خودشون بعد این آیه رو میخونه میگه پدر من نمیخواه مستقی آیه باشم این من این شمشیر من اونم اسب. شما هم نری من میرم بچه‌ی 22 ساله جوان 22 ساله این گروه شبانه از بصر به بس سمت کوفه میان اون تیپای اولو دیدید این تیپا رو ببینید بعد آ یک جمله دیگه هم داره خیلی قشنگه پدرش بهش میگه که خب برادرات نیامدن منو برادر بزرگی داریم ببین تو اگه میخوای نیا میگه که حسین و عباس با همه پسران و برادران و حتی دخترانشان دران به سمت مرگ میرن من اینجا بشینم حسین دخترش هم برایشه داره میبره نقد شده صبح آشورا بعد از نماز صبح پدرش میگه عبیدالله رو دیدم که را نمیره میره میرقصه در میرقصه هم تو با ولع داره میره به سمت دشمن بعد از وقت بعد از وعده شهادت که حسین بیارانش داد تو صحبت امام حسین فرمودن امروز همه شما شهید میشید تا زو میگه وقتی امام حسین این وعده شهادت رو داد که امروز اونایی که دیگه موندید همه شهید خواهید شد دیدم پسرم این نوع جوان افتاد به سجده وقتی امام حسین گفت همتون شهید میشید دیگه مطمئن شد شهید میشه افتاد به سجده و سجدهش خیلی طول کشید دیر بلند شد از سجده و برخاست فوری آمد پیش امام حسین گفت اجازه میدی من برم اجازه میدی من بزوتال برم که شهید بشم پدر و دو فرزندش هر ستا با هم میرن تو دل دشمن پدر میگه که ما میخوایم جلو چشم همدیگه بجنگیم جلو چشم همدیگه کشته بشیم صدای تکبیر اینا میگه پدر و دوتا جواناش میگه همطور که میریم جلو میزنیم شمشیر تکبیر میگیم که صدای همدیگرم بشنویم که بدونیم که هنوز زنده است صدای تکبیر عبیدالله دیگه نمیاد صداش قطع میشه ساکت میشه پدر میفهمه که عبیدالله خورده و افتاده سری خودشون میسونه بالا سر پسرش اینا گوش کنید میگه با خون آمد بالا سر بچهش دید خون از دهانش داره میاد بیرون در همه حال داره این آیه قرآن رو میخونه با خونی که از دهانش میاد آیه 127 سوره نحل که وسبر و ما سبرو که الا بالله مقاومت کن و مقاومت جز با به نام خدا و به یاد خدا امکان نداره و چی ولا تهزن علیهم قمخور برونها ولا تکفیذیقین من ما یم از این همه خیانت و نامردی احساس فشار و تنگنا نکن در یا ای قرآن رو با خون از دهانش برای خودش میخونه بعد با در حالی که لبخند بر دهانش شهید میشه آخرین جمله‌ای که پدرش میگه نقل میکنه میگه الله آخرین جمله‌ای که به من گفت این بود که پدر کاش برادرانم میآمدند دیدی حسین چه تنهاست آخرین جمله قبل از شهادتش کاش برادرانم میآمدند دیدی حسین چه تنهاست و این پدر بالا سر دو تا بچش میاد شهادت اینا رو می‌بینه که بعد خودش شهید میشه و نغق شده وقتی اینا دو تا بچه شهید شدن این ساله و 25 ساله نقد شده که رو به با آسمان بالا میبره و رو میکنه به با بالا و میگه خدایا این دو قربانی من این دو قربانی من و نقد شده قبل از که بره امام حسین خودشونو میرسونن و دست نوازش برشانه این مرد میکشن و میگن برو که به فرزندانت ملحق شی و میره شعید میشه نمونه دیگه حجیر بن جندب جوان بیست و دو سال ساله است شاعر خطیب و سخنران قاری قرآن حافظه بخش مهمی از قران، بسیار مؤدب و متخلق، مجاهد، شمشیرزن کم نظیر، اینا که میگم تو تاریخ در موردشون ایشون نقش جدا، اینا رو همجوری نمیگم من. پدرش 60 70 ساله از تبعیدیهای عدالتخاه زمان خلیفه سومه. مثل ابوذر که اعتراض کردن به فساد اقتصادی و اینا رو بعد تبعید شدن، یک پدری هم جزء تبعیدیهاش بوده که از کوفه به شام تبعید شده. اینم با پدرش آمده، با هم اومدن تو منطقه و تو تیرباران اولین حمله صبح عاشورا اینا شهید شدن. جالبه اینا توی کوفه تحت تعقیب جاسوسان حکومت بودن. از کوفه مخفیانه فرار میکنن که خودشونو برس وقتی میرن مسلم و اینا شهید شدن. دیگه کوفه دست دشمن افتاده و خیانت شده. با خیلی بازی و پارتیزانی خلاصه از کوفه اینا خودشونو میرسونن به امام حسین. پدر از افسران امیران مؤمنین در سفینه. و میگه جوری باید از شهر بریم بیرون که دست کمینهای حکومت نیافتیم چون اینا خیلی رو تو را گرفتن 17 روز قبل از رسیدن حسین به کربلا به امام حسین میرسن ایشون رفیق عاشق حضرت علی اکبره نقل شده که خیلی با حضرت علی اکبر تو همون فرصت کوتاه دورو حضرت علی اکبر خیلی میچرخید و میپلکید بعد میگفتن برای چی میگم من که پیغمبر رو ندیدم که این ایشون رو که انگار پیغمبر دیده باشم چون امام حسین فرمودن ما هر وقت دلمون برای دیدن لب چهره پیغمبر و طرز راه رفتن پیامبر و طرز صدای پیغمبر و قرآن خوندن پیغمبر تنگ میشد به علی اکبر میگفتیم بشین یکم حرف بزنم یکم قران بخونم که ما یاد پیامبر برامون زنده میشد میگم من که پیغمبر رو ندیدم شما رو چرا برای همین ایشون میگن خیلی دوربر علی اکبر بعد از نماز صبح باز نحوه شهادت بعد از نماز صبح جلوی پدر زره می پوشه پدر کمک میکنه زرهش رو درست بپوشه با لبخند مثل که درین لباس دامادی تنی بچه بچهش میکنه این پدر میگه پچه های شد و اینا برو زرهر تنه تنی میپوشونه با لبخند و میگه که پدر به بچه به فرزندش میگه که هر دو با هم اجازه بگیریم با هم بریم شهید بشی میان خدمت امام حسین حضرت علی اکبر ایشون رو بدرقه کرده تا چند قدم میاد خدمت امام حسین میگن اجازه میدید ما با هم بریم شهید بشیم امام حسین میفرماند بسم الله برید با هم میان و حمله میکنن و شهید میشن و امام حسین خودش بالا سر اینا میرسونن و السلام علی جنده و پنه سلام بر جندب و پسر جندب از جمله کسایی که امام حسین اومدن بالا سرشون و سلام و درود فرستادن تو زیارت نای مقدسه که از زیارت امام حسین از طرف امام زمان اجل الله فرجه است اسم اکثر های کربلا آمده از جمله ای پدر و پسر که امام زمان بر اینها درود فرستاده. نمونه دیگه خب زهیر نه اون زهیر مشهور یک زهیر دیگه هست به نام زهیر ابن سلیم ازدی ایشون از کسانی بوده که تو جنگ قادسیه با علی ارتش ساسانی جنگیده. با پهلوان مشرک ایرانی بوده کسی به نام نخیرخان یا نخارجان تو تاریخ ثبت شده اسمش که و پهلوانی بوده که اصلا از هیکلش همه و ایشون اورو زده و بعد از فتح نهاوند از جمله کسانی بوده که در اونجا ازان میگه. چرا فاتحین ایرانه، به نفع اسلام. و جالب از ایشون ناقش شده که همیشه از ها تعریف میکرد. بعد از که تو جنگ قادسی، تو جنگ فتح و شرکت داشته برمیگرده ایشون همیشه از ها تعریف میکرد. میگه اینها مسلمان اینا زود شناختن و زود پذیرفتند نه که به اینها از ترس مسلمان نشدن. اینها خودشون اسلام قبول کردند. یه جمله ای که از ایشون که از شهدای کربلاس به ایرانیان نقل شده. غروب تاسوعا شب آشورا خودش رو میتونه برسونه به امام حسین. تا اون لحظه نمیتونه. چجوری اومده؟ از کوفه، جزء سپاه عمر سعد اومده. چون میدید نمیتونه خودشه برسه به کربلا، اینا تو کوفه گفتن هرکس ما داریم بینیم این شورش و حسین فتنه حسین رو بخوابونیم بیاین. این میبینه هیچ جور نمیتونه خودشه برسونه به امام حسین. تو ارتش اونا. میگه ما همجدی. به عنوان رزمنده ارتش یزید تا کربلا میاد شب آشورا خودش چی میرسونه به ماموسین و بعد از اینکه معیوس میشه از صلح حالا ای از این چیزهای ما داریم ما پدر داریم توی نیروهای دشمن پسر تو سپاه ماموسین خب برادر داریم تو سپاه برادر توی سپاه مورد عکسشم اینه که پسرش تو سپاه عمر سعد خودش تو سپاه ماموسینه که با تیر پسر کشته میشه طبق بعضی نقل ها پسرش جزو فرماندانه یه بخشی از سپاه عمر سعده او شبی که میخواد جدا بشه پدر پسرش رو میکشه کنار میگه که انتخاب بزرگی در پیش است. امشب شب مهمیه خوب فکر کن داریم چکار کار میکنی تو میگه باید فکرامو کردم شما خوب فکر کن پدر میگه که دیگه به پسرش چیزی نمیگه میاد ملحق میشه به امام حسین پسر به یزید برای پول و شغل و اینا این پدر تا شب،, شب آشورا، تا صبح عبادت و سجده است و بعضی از اصحاب میگن این آدم 60 سال سن 60 70 سال نشه ولی یک 60 ساله جوانه جوری شمشیر میزد که اصلا کسی صورتشو نگاه نمیکرد نمیفهمید چند سالشه ای که بعد سید و شهدا بالا سر ایشون هم آمدن که السلام علی زهیر درود بر زهیر بالا سر ایشوهای امام حسین کی می آمدن سلام بره سلام بر تو سلام بری و اون حمله اولی که صبح عاشورا شده میدونین یه مرتبه چندین هزار تیر آمد به طرف اینا باران تیر آمد که تو همون باران تیر پنجاه نفر شهید شدند. از اصحاب ماموسیم و حمله بزرگی بود که اینا صبح ها کردن جمله یک که عمر سعد اولین تیره که میزنه به بقیه میگه که اش هدولی اندل امیر بعد که رفتید پیشه امیر شهادت بدید که انی اول و من رما اول کسی که تیر من خودم بودم آباد فردا نگین نگین میخوایم قنا تقسیم کنیم شوق بدن اینا نگن تو نبودی و مردد بدین همه بعدا شهادت بدین اول تیرو من زدم این جمله این طرف امام حسین امام حسین این جمله‌های امام حسین هر کدومش یک یک فرهنگ نام است اون لحظه‌ای که این باران تیر میواره از آسمان که نقل میکنن آسمان دیده نشود نمیشود وقتی که این باران تیر آمد مثل اینکه هوا whatever بشه اینجوری باران تیر آمد و وقتی این هزاران تیر آمد با هم، و وقتی رفت 50 نفر دیدن رو خاک افتادن شهدا بعد از این لحظه است که امام حسین خیلی جمله هاش قشنگه مثل که یک شاعرو نویس 10 تا نویسنده نابغه نشستن هزار سال بعد اینارو درست کردن اینا اون چیزایی که تو اون فرنگ فقاول فهم نیست مفهوم نیست که هم واقعی هم اینقدر زیبا وقتی امام حسین برمی‌گردن می‌بینن که ده ها نفر شهید شدن افتادن و خون گرفت زمین رو و بعضیا دارن دست و بال میزنند در حال شهادتن امام حسین فرمود قوم رحمکم الله الی الموت برخیزید به سوی مرگ به بقیه یارا که هنوز برخیزید به سوی مرگ که رحمت و رحمت خدا بر شما باد فا این سهام این تیر که دیدید این تیرها رسول القوم الیکم نماینده هاشون اینا نماینده هاشون بودن اینا ما رو دعوت کردند حالا هم نمایندهاشون رو فرستادن به استقبالمون. این تیرا. این اینا چیزایی بود که این مردم برای ما فرستادن. برخی که خدا شما رو مورد رحمت خاص خود قرار دهد. قومو الى الموت. به پا خیزید برای مرگ. همه بلند شید برای کشته شدن. یه موردم امر ابن جناده است. یازده ساله. که عرض کردم. اون بچهی که گفتم گفت من و مامانم فرستده. رجازش رو گش کن میگهن شمشیر رو خاک کشیده میشد قدش کوتاه بود شمشیر رو خاک کشیده میشد امام حسین بغلش کردن بوسیدن و گفتن که شما گفت نه من پدرم شهید شده من خودم میخوام برم شهید بشم امام حسین فهمیدن نه شما شهیدتون رو دادین شما برو پیش مادرت میگه مادرم گفت برو این این شمشیر رو او بسته به من گفت مادرت تنها نمونه گفت من میخوام من به مادرم ملحق نمیشم من میخوام به پدرم ملحق بشم میخوام شهید شن. حالا این بچه یازده ساله آمده میگه من نزد مادرم مرافر استاد نزد او باز نخواهم گشت مادرم به من گفت دیگر بر نگردی <تصفيق> مادر بچه یازده ساله میگه مادرم به من گفت دیگر بر نگردی میری و به پدرت ملحق میشه این بچه اومده توی خط مقدم داره حمله میکنه به سمت دشمن بچه یازده ساله میزنه به دل هزاران نفر آدم وحشی رجزش چیه؟ امیری حسین و نعم الامیر سرور و فؤاد البشير تصور کن بچه 11 ساله باباش تیک تیک شده همه افتادن تو این وضع داره میره و همچین رجزی میخونه نقد کردم از یارو میگه کلمات بزرگ رو چجوری بذاریم تو دهان آدمای واقعی ها پای کلمات بزرگ از دهان آدمای واقعی اینجا بیرون آمده نمیخواد بذاری تو دهان آدمای واقعی؟ فرمانده من حسین است چه خوب فرمانده ای فرمانده از این بهتر نیست مایه شادی قلب رسول خدا که بشیر و نذیر بود علی و فاطمه والده و هل تعلمون له من نذیر پدر و مادرش علی و فاطمه دیگه نذیر آدم کسی رو پیدا میکنید این فرمانده من له تلعتن مثل شمس الظه له غررتن مثل بدر منیر سیماش چون آفتاب پیشانی چون محتاب به هم حسین میگه میگه اگه میخواد آفتاب و محتاب یه ببینین به چهره فرمانده من نگاه کنید و 11 ساله نام نامشونم و پدرش در زیارت ناحیه مقدسه آمده که امام زمان فرمودن سلام بر پدر و پسر سرش رو بریدن حالا مادرش رو گوش کن سر این بچه رو میبرن میارن پرت میکنن طرف این این حادثه در مورد حداقل دو تا از شهدها یکم وهابی که ایشون تکرار شده سر بچه 11 ساله رو میبرن پرت میکنن جلوی خیمه های اینا جلوی مادرش مادر اینشون خانم بسیار شریفی است به نام بحریه نقد شده سر بچه‌شو برمیداره مادری که اینقدر اوج عاطفه به محبت سر بچه رو برمیداره حمله می‌کنه به طرف نیروهای دشمن این سر رو مثل سنگ پرت می‌کنه به سمت اونها که این می‌خوره به سر یکی از اونها از رو اسب میفته پایین میگه منو با این چیزا میخوای شر پشیمان کنی سر عمر رو میده جلوی من که من بگم از اشتباهی کردم بعد شروع میکنه خود خانوم هم میرس ستون یک از خیمه ها رو میکنه به عنوان اصله ها. حمله میکنه خودش به طرف دشمن میگه شوهرم زدید پسرم زدید حالا نوبت منه که جلوی حسین کشنی بشم این حالا نوبت منه شروع میکنه رجز میخونه خانوم میگه که انی خاولیتون بالیتون نحیفه درسته یک زن نحیفی هم. بدنم فرسوده است قدرت جسمانی برای جنگیدن ندارم اما اذربكم بکن به ضربت انیفه اما چنان ضربه محکمی به شما خواهم زد که معنی ضربه دست رو بفهمید من, من نحیفه اما ضربه من انیفه است خودم نحیفه این لاغرم اما ضربه انیفه یعنی خشنه خب این دون بنی فاطمه الشریفه من پیش چشم فرزندان فاطمه شریف حالا نوبت خودمه منم فدای فاطمه و فرزندان فاطمه میشم که میره دو نفر از این دشمنو دشمن رو مجروح میکنه این خانم امام حسین شخصا میان ایشون رو جلوشون رو و برشون میگردن به سمت خیمه ها میگن شما به بیش از وظیفه عمل کردی من از شما خواهش میکنم برگردید برید تو خیمه ها و آخرین مورد رجاز علی اکبره این رجز حضرت علی اکبر که امام حسین هر وقت دلمون برای جدم تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردیم كنا وذ اشتقنا نبی یک نبيك یا هر وقت ما مشتاق شدیم پیامبر تو رو ببینیم نظر الیه میگشتیم دو مال علی اکبر که یکم رابر و یکم صحبت کن قرآن بخون صدات بشنویم صدات این صدای پیامبره علی اکبر که خب شنیدید دیگه حالا روزی از حضرت علی اکبر رو من فقط عرضم رو با ایشون کنم خود این دو بیت شعری که از ایشون نقش شده در چند لحظه قبل از شهادتش خود این یک دنیا استوره و افسانه، و از اساتیر و افثانه ها پالتره. ایشون رجاز الیکور اینه الحرب قد بانت لها الحائق و ذهرت من بعدها مسادق اول اینا رو ببینید همه شو نویسنده نویسندهن، خطیبن، سخنرانن، اهل قلمن، آشنا با کلماتن هنرمندن، عدیبن الحرب قد بانت لها الحقائق و ذهرت من بعدها مسادق والله رب الارشلان نفارق جموعكم او تقمد البوارق الحرب قد بانت له الحقائق تو لحظه جنگ و نبرد که حقائق آشکار میشه امروز این لحظه لحظه نبرد که حقائق همه حقیقتا خودشونشون خواهد داد حق جبهه حق باطل که آدمات درونشون چیه؟ این لحظه لحظه ای که حقیقت از پشت پرده بیرون خواهد آمد اوریان و برهنه جلوی چشم همه جلوی چشم تاریخ و ذهرت من بعدها مسادق بعد از نبرد امروز است که شناخته می شود چه کسانی صادقند و چه کسانی کازه اند کیا درو گفتند که به خدا ایمان دارند و کیا راست تو لحظه نبرد بعد از در چکاچک شمشیرها معلوم میشه شود کیا صادقند بعد والله رب العرش خداي عرش قسم لا نفارق جموعكم به خدای عرش قسم دست از سرتون بر نمیداریم حالا اینا اول که اکثریتن بترسن میگن دست از سر ما میگه به خدا دست از سرتون بر نمیداریم او تقدم البوارق تا لحظه ای که دیگه این شمشیرها از کار بی این من و این شما و بعد نقش در روایت که میگن هر وقت علی اکبر رو گم میکردیم میگفتن ببینید کجای سپاه دشمن پاره میشه سازمانش به هم می ریزه، بدین علی اکبر اونجاست. چون نقص شده ایشون شمشیر زن فوقالادهی هم بودن. اینا هسا همه فنحریف بودن. حالا یک کسی عدیب و شاعره، دیگه شمشیره که دستش می دید تلپی می یک کسی آبد و زاهده، دیگه اهل شعر و ادب و هنر نیست. یک کسی اهل اینا هست، اهل جنگ نیست. خب همی آدم جوری علی اکبر جنگیده تاریخ‌های مستندی که علسنته هم نقد کردن شیعه و سنی نقد کردن که ایشون حداقل ده صحبت 10 نفر کشتنه بعضی جاها صحبت صد ها کشته است که یه نفر آدم با با اون تشنگی که خب نقش شده دو سه بار هی برگشت میشه امام حسین و گفت که هیچی آب نیست هیچی آب نیست که امام حسین نقش شده بار آخر این انگشترشون رو گذاشتن گفتن که این انگشتر تو دهانه علی اکبر این رو به مک شاید کم آرام بگیری دوباره علی اکبر حمله میکنه نقصده که میره و سپاه دشمن رو متلاشی میکنه ده ها نفر رو میزنه هر بار برمیگرده چهرهش خونین تره دوباره بدنش زخمی تره این دفعه برمیگرده پیش امام حسین بار آخر و دوباره میگه پدر یک تهجام آب نیست امام حسین میفرمان که نه هیچی آب نیست جانم آبی نیست برو این بار که از دست جدت آب نخوا این دفعه برو و برنامه‌گردی این وضعیت جمله‌ایه که به افسانه شبیه‌تر و نزدیکتره ولی عین واقعیت بوده و سلام علیکم و رحمت الله